سوم. در برابر سوداگر خدایان کورش بر کرانه های روده این واقعه به خودی خود شگفت نیست. سرور جدید امپراتوری ماد پارس در این مرحله از حماسه خود هنوز اجازه نمی دهد بلند پروازی هایش از مرزهای قلم تجاوز کند. با این حال کوروش میدانست انقلابی که در اکباتان ایجاد کرده است به مزاق همسایگانش خوش نمیآید. سعود او سریعتر از آن بود که قدرت اطراف امپراتوری او را بی تفاوت و بیاعتنااب بگذارد. بیشک نبونید این شاه عجیب علاقه چندانی به او نداشت. به نظر می رسید که او با وجود تصرف حران می باغ معنوی خود را در بابل و در جهان باستانی اکدی سومری کشت کند و بپروراند. کوروش به مصر هم نمیاندیشید. مصریان دور بودند و به طور کلی نفوذ و کارایی چندانی نداشتند. کوروش ملل و اقوام ایرانیز که در قسمت شرقی پارس جدید میزیستند به خوبی می شناخت. آنها خشن، پیشبینی ناپذیر، فتنجو و پرخاشگر بودند، اما برخلاف پارس‌ها به سازمان سیاسی نظامی که به برکت آن هخامنشیان توانسته بودند، به اولین پیروزی استراتژیک غیرمنتظره خود دست یا بند دست نیافته بودند. در عوض، شمال رود هالیس برای پسر کمبوجیه موضوعی بسیار اندیشه برانگیز بود. قلمرو لیدی، چهار راه پهناوری که در منطقه علیه غربی آسیا واقع بود، نقطه برخورد میان تمدنهای نشأت گرفته از یونان و تمام اقوام آسیایی محسوب می شد. نه از اهمیت این مهاجر نشینهای یونانی مستقر در امتداد ساحل، در میلت، افس و اسمیرن بی اطلاع بود، و نه از عمق وابستگی آنها با جزایر یونانی و مادر شهرهای قارهای آنها دلفی مذهبی اسپارت نظامی و آتن سیاسی کوروش این را نیز میدانست که سارد شهری که کرزوس بر آن حکومت می کرد، پایتخت حقیقی بازرگانان سوداگران و متفکران سراسر یونان به شمار میرفت این شهر بزرگ لیدی قطب جاذبه ای برای اقوام همسایه بود در راهایی که آن را احاطه می کردند، امکان دستیابی آسان به ایالات و کشورهای اطراف را فراهم آورده بود. لیدی بدین ترتیب، عبور میان دریا و قاره، جهان یونانی و جامعه شرقی، مهاجر نشینهای ساحلی و جمعیت سامی را امکان پذیر کرد. مردم لیدی که تراکی تبار بودند و نشانهای سامیان سوریه را با خود داشتند در چهار راه جاده حمله‌ها و تجارتها مستقر شده بودند و بلوک محکم و معینی مانند پارس‌ها نداشتند در اینجا برخلاف بابل یا مصر سنت آبا و اجدادی بزرگی وجود نداشت یک قرن پیش آشوربانیپال پال پادشاه آشور گفته بود که لیدی کشوری است که سخنی درباره شاهان و پدران آنها هرگز به گوش نرسیده است البته لیدیایی ها از مدتها ها پیش در آنجا زندگی میکردند اما اندک مدتی قبل از تشکیل دولت کوروش موفق به تشکیل دولت شده بودند آیا قلمرو لیدی میخواست انتقام شاه آستیاگ برادر زن کرزوس شاه جدید سارد را بگیرد و به قدرت رسیدن پارس را در نطفه خفه کند یا امنیت اقتصادی آسیای صغیر را با ماجراجویی نظامی تأمین کند از این نظر کورش تهدیدی برای منافع لیدی محسوب میشد او می توانست در کناره حالیس دو راه تجارتی با اهمیت درجه اول را تحت کنترل خود درآورد با تسلط بر شهر مستحکم پتریا در شمال یک بیزی که رود هالیس ایجاد کرده است در موضعی قرار گیرد که دو جاده بزرگ استراتژیک لیدی را در اختیار بگیرد. ای که سارد را به شوش می پیوندد معروف به جاده شاهی و جاده سینوب در دریای سیاه که به تارسوس می رسد و در منتها علیه جنوبی آسیای صغیر در کنار مدیترانه قرار دارد. آلیات، پدر کریزوس در گذشته با هوخشتر جنگ کرده بود چون قلم لیدی تحمل نمی کرد که قدرت ماد بر این گره حیاتی ارتباطی مسلط باشد. آیا اکنون که کورش با تمام قوای خود در کنار هالیس مستقر شده بود و از برای کریزوس بیپروا به همانسان بود؟ آیا ارباب سارد خطر نادیده گرفتن قراردادی را که در پی خورشید گرفتگی میان پدرش و شاه ماد و با تضمین نبوکدنصر منعقد شده بود میپذیرفت؟ مگر طرفین قرارداد با قراردادن خون خود این توافق را مهر و امضا نکرده بودند پس کورش هیچ حرکت دشمنانه ای نسبت به کرزوس انجام نداده بود او فقط در جایی اردو زده بود که از زمان پیمان صلح 28 مه سال 585 وجود مادها در آن تحمل شده بود. اما در آن سوی رود زروتهای افسانهای اقتصادی وجود داشت که به او امکان می داد رؤیاهای خود را تحقق بخشد. نبردهای بیپایان جنوبی که آشوریان علیه بابل انجام دادند، راه نفوذ آنها را به باطلاقها و بیابانها می و این یکی از دلایل فروپاشی آنها بود. اقوام نوین یعنی آریایی ها باید برعکس به سوی شمال مینگریستند نگریستند که ممکن بود کلید فتح جهان در آنجا باشد. کوروش اگر می‌خواست لیدی را تصرف کند باید نخست قدرت حقیقی لیدیایی‌ها را می‌شناخت و دقیقاً به لیاقت این مرد یعنی کرزوس که می‌گویند سطحی، خرافاتی، ولخرج و زیرک بود آگاه می‌شد و در عین حال باید به ارزیابی اهمیت شهرهای یونانی ساحلی و پیوند همبستگی آنها با مادر وطن می‌پرداخت آیا در صورت درگیری عمده با لیدی میتوانست در میان یونانیان ساحل نشین متحدانی سزاوار جانشینی قدرت سارد پیدا کند؟ زیرا گذشته از هر چیز موازنه و تعادل هماهنگی که به ظاهر بر کشور کرزوس حاکم بود فقط حاصل سیاست سلط بود که لیدیایی ها تی ده ها سال بر شهرهای مستقر در سواحل دریای قلم رو سارد اعمال کرده بودند. آیا کروش می توانست در صورت لزوم به نفع خود به کینه های انباشته شده گذشته جان تازهای ببخشد سر زخمها را دوباره باز کند و به یونانیان آسیای صغیر یادآور شود که کرزوس به رقم مهارت خود جز یک فاتح مبتزل و پیش پا افتاده و یک سلطجوی شرقی نیست؟ لیدی یک قدرت بین المللی لیدیایی ها توانسته بودند پس از گذشت قرنها در یک قلمرو سلطنتی سازمان یابند آنها مدتهای طولانی در آسیای صغیر سرگردان بودند و به قارت شهرها و حمله به کاروانهای رسیده از شرق یا غرب قناعت می کردند در واقع از زمانی که کیمری ها فرگیه را منهدم کردند، هیچ قدرت سازمان یافته میان دریای سیاه دریای اژه و رود مشهور هالیس وجود نداشت از قرن هشتم یونانیان مراکز تجاری بسیار فعالی در سواحل و نزدیک وطن اصلی خود تشکیل داده بودند ادعی فقط تشنه ماجراجویی، قارت و توسعه طلبی بودند و عده دیگر که با سیاست عرضی آن زمان یونان از زمین خود رانده شده بودند، جویای زمینهایی بودند تا در آنجا کشاورزی کنند. آنها روابط ثمربخشی به ویژه فرهنگی با جماعات بومی برقرار کرده بودند. یونانیان سده 7 هفتم مدتها بود حماسه را ابداع کرده بودند که نوعی از شعر قنایی خاص بیان پهلوانیها ها و ماجراجیی های شخصی بود. تراش سنگ مرمر و ایجاد نسبتها و خطوط هماهنگ نیز کار آنها بود. بدین ترتیب رفته رفته نوعی تسلط و برتری اخلاقی یونانی در لیدی به وجود آمد. یونانیان ساحل نشین با وجود آنکه برای تأمین امنیت خود به خوبی مسلح نبودند به ضرب مذاکره و مصالحه و مهارت های دیپلماتیک به سرعت پیشرفت شایان توجهی پیدا کردند شهر میلت برجسته ترین نمونه آن بود این شهر که در خلیجی واقع شده بود که رود ماندر به آن میریخت در تمام سواحل منطقه در دهانه نیل و دانوب و تا رود حالیس دارای مراکز تجارتی بود. شهر اسمیر نیز به منزله بندرگاه سارد به شمار می رفت جایی که هرموس به دریا می ریخت. شهر افس که در نزدیکی رود مشهور پاکتل قرار داشت الگوی یک شهر مرفه بود. در تمام طول قرن هشتم در حالی که خود لیدیاییها بیسامان بودند، مهاجر نشین های یونانی وضعی داشتند که آرزوی تمام کسانی را که آتن، کورنت یا اسپارت را ترک میکردند، تا در شرق ثروتی بیاندوزند، برآورده میساخت. با وجود این، در سال 687 ها سارد را اشغال کردند و آنجا را به نحو قابل توجهی توسعه دادند. در آن هنگام آخرین شاه سلسله هرکلیدی کاندل بر آنها حکومت می کرد. این پادشاه که با توطعه همسرش از تخت سلطنت به زیر افتاد به برکت تاریخ هرودوت نامش در تاریخ به عنوان کسی ماندگار شد که می خواست همه زیبایی زن او را بشناسند. در گروه نگهبانی پادشاه سربازی به نام گوکس بود که سلطان به او اعتماد کامل داشت. از او خواست تا برای اطمینان از زیبایی زنش او را برهنه تماشا کند این کار انجام شد ولی همسرش فهمید و برای انتقام از گوکس خواست شاه را به قتل برساند سپس گوکس پادشاه لیدیایی ها شد با وجود این مقاومتهایی از سوی هواداران کاندول نگونبخت انجام شد و گوکس آنقدر هوشیار بود که از پیتی معبد دلفی بخواهد در این بار قضاوت کند چند ماه پس از این واقعه شاه جدید مورد تایید پیتی قرار گرفت و بدین ترتیب بر تخت خود و پادشاهی بر مردم لیدی استوار شد پیتی موفقیت او را پیشبینی کرده بود ولی در پایان اندرزی داده بود که کسی چندان توجهی به آن نکرد. انتقام خاندان هراکلیدس چهار نسل بعد از گوکس گرفته خواهد شد. گوکس با شادی از اینکه که حاطف اصلی یونان پادشاهیش را تایید کرده است دست به اقدامی اصیل زد. او که غیر یونانی و بربر شمرده میشد، تصمیم گرفت هدایای های از طلا و نقره، به ویژه شش جام زرین، تقدیم معبد دلفی کند. این حرکت اولین سیاست هوشمندانه‌ی استراتژی لیدیایی نسبت به یونانیان ساحل نشین و نسبت به تمام یونان بود. شاه جدید شهرهای میلت، اسمیرن و سپس شهر کلوفون را تصرف کرد. از نظر لیدیایی ها این به معنای تصاحب اموال یونانیان و نیز تبدیل آنها به مزدوران فصلی بود که به آن نیاز داشتند. گوکس میدانست که لازم است توان اقتصادی بلغوه سرزمین های اشخالی را حفظ کند. او باید دشمن را وادار به اطاعت می کرد بیان که آن را به کلی نابود کند. شاه لیدی با حمایت طبقه جدیدی از رهبران که کمتر اشرافی و بیشتر علاقمند به توسعه سیاسی بودند، میخواست کشور خود را از حالت دربست بیرون آورد، فریگیه کوهن را به سوی فلات آناتولی بکشاید و سلطنتی دریایی پدید آورد که راه به همه جهان داشته باشد. اما این سیاست جزبا همکاری و مهارت یونانیان امکان پذیر نبود. تسلط بر راه های دریایی به کمک اشغال بندرها و مراکز بازرگانی به او امکان می‌داد نظام مالیاتی موثرتری از پرداخت خراج کاروانهایی که از بیابانهای شرق میگذشتند ایجاد کند. بوکس بدین ترتیب راه را برای روابط یونان با شرق هموار کرد. البته روابط مبتنی بر قدرت به ویژه در زمینه اقتصادی بسود لیدیایی ها بود اما آنها به نبوغ یونانی نیز احتیاج داشتند برعکس یونانیان نیز تحت تأثیر شرق بودند در یونان کلده و بابل به دلیل مهارت در علوم، آشور و نینوا به دلیل سازمان سیاسی نظامی خیش مصر و منفیس به دلیل حس معماری و نظام مذهبی و لیدی و سارد نیز به دلیل ثروت زیادشان مورد ستایش بودند با وجود این، عجیب آن بود که در زمینه مذهبی آمیزشی میان دو سنت پیدا شده بود. رفته رفته، یونانیان آینهای بادگساری، رازوری را پذیرفتند و شور و شوق، گمراهی روح و مستی را صفات نیک شناختند. مرمنات ها و طبقه رهبری لیدی با پیروی از الگوی یونان جویای رفاه و تجمل بودند. نگاه آنها به جهان نگاهی زیبایی شناسانه بود حالان که خرد و فرزانگی اندیشه یونانی رو به خاموشی می رفت شاید لیدیایی ها یکی از کلیدهای اصلی اخلاق خود و در عین حال سرمستی شادمانه را در این شعر اوریپید می یافتند که می گفت هر چیز که عاقلانه است فرزانگی نیست با این حال لیدی تبدیل به قدرت مستقلی شده بود در 631 پسر گوکس، شاه آردیس به خود اجازه داد اختدار اخلاقی آشوربانی پال را زیر پا گذارد و از پرداخت خراج به او امتناع کند های یونانی نیز سازمان یافته بودند نه برای مقاومت در برابر مردم بومی چون به رقابت و یاری اقتصادی آنها نیاز داشتند بلکه برای تشکیل نوعی قدرت مستقل که به عادات شرقی پشت کند و از برتردانستن زور نسبت به هوش، ذهن و صداگری خودداری ورزد. آردیس پادشاهی نبود که درخواست یونانیان در مورد خودمختاری را درک کند. او میپنداشت که فقط به کمک اسلحه میتواند تسلط لیدیایی ها را بر مهاجرنشین های یونانی تأمین کند. در سال 616 او جنگی علیه میلت به راه انداخت تا این بندر بزرگ را که محل عبور و ترانزیت تمام ثروتهای شرق بود تحت انقیاد درآورد اما چگونه میشد جنگ کرد بی آنکه به نابودی دشمن پرداخت و مرغی را که تخم طلا میگذاشت کشت چگونه میشد بدون کشتن میلت آن را خفه کرد این مسئله ای بود که پس از 49 سال سلطنت و هنگام مرگ هنوز برای آردیس وجود داشت و سپس برای پسرش سادیات طی مدت 12 سال سلطنت و حتی برای آلیات که در 610 به حکومت رسید مطرح بود. پس آلیات که با پیشینیان خود تفاوت داشت این جنگ را که خود چندان تمایلی به آن نداشت به عنوان میراز پذیرفت. او برای آنکه به این جنگ خاتمه دهد بر آن شد تا نبرد جدیدی را پیش کشد لیدیایی به محض آنکه خبردار میشدند محصولات کشاورزی آلیات آماده برداشته است به سوی آن شهر حرکت میکردند با رسیدن به شهر نه خانه ها را خراب میکردند نه چیزی یا جایی را آتش میزدند بلکه به تاراج محصولات درختان و مزارع میپرداختند و سپس به شهر خود باز میگشتند هرودوت می نویسد، اگر لیدی خانه ها را خراب نمی کرد، از آن رو بود که مردم اقامتگاهی داشته و برای ادامه زندگی ناچار به کشت و کار باشند و همیشه انگیزه لازم برای قارت و دستندازی به آن سرزمین برای او فراهم باشد. اما سرزمین اصلی یونان بدون آن که کمک نظامی به میلتی ها بکند حالت آماده باش داشت. تا آنکه در یکی از عملیات تاراج حریقی که لیدیایی ها برای سوزاندن محصول به پا کرده بودند به معبد آتنا سرایت و آنجا را ویران کرد. کمی بعد آلیات بیمار شد. شاه از بیم آنکه مبادا این بیماری نشانه ای از سوی خدایان باشد با حاطف معبد دلفی مشورت کرد. پاسخ فوری آن بود که معبد آنها باید بیدرنگ بازسازی شود. سرور میلت به نام تراسیبول فکر کرد که آلیات برای مذاکره در مورد متارکی جنگ خواهد آمد و بدین ترتیب این جنگ دوازده سال خاتمه خواهد یافت. او در انتظار فرستاده سارد دستور داد همه قلات شهر را خواه از انبارهای خصوصی یا مخازنی دیگر فراهم آورده در میدان انباشتند و اعلام داشت تمام اهالی با علامتی که وی میدهد به بادنوشی و خوشگذرانی بپردازند. درستاده که اهالی را در حال عیش و خوشی دیده و خبر آن را به تراسیبول داده بود به سارد مراجعت کرد. سپس طرفین با هم پیمان صلح بستند. زیرا آلیات که انتظار داشت میلی به قحطی شدید دچار شده باشند از قاصد شنید که اصلا خطری پیش نیامده و میلی نه فقط از جهت آزوق در تنگنا نیستند بلکه وضع حال درست خلاف آن است. طبق مفاد معاهده از آن پس دو طایفه با هم دوست و همدست شدند و آلیات به جای یک معبد دو معبد در آسزوس آتن ساخت و سلامتی خیش را بازیافت. در سال 604 سارد و میلت پیمانی امضا کردند که انعکاس سرشت ژرف روابط میان قدرت سلطجوی مانند لیدی و شهری مانند میلت بود که فعالیتی چنان درخشان داشت. اعلام نشد که سپاهیان آلیات شهر را اشغال خواهند کرد بلکه توافق شد که لیدیایی ها مهمان میلتی ها باشند به سراحت اعلام نشد که میلتی ها قرار است برای سارد مزدورانی مدافع منافع لیدی باشند بلکه آنها را متحد نامیدند خلاصه مهمان و متحد یا به قول هرودوت دوست و همدست در کنار یکدیگر قرار گرفتند که البته صورت ظاهر بود نیروهای میلت به هیچ وجه نمی توانستند در سارد مستقر شوند و تراسیبول جبار نیز نیازی به لیدیایی ها برای حمایت نظامی از خود نداشت چون یگان دشمن واقعی میلتی ها همان لیدیایی ها بودند. چند سال بعد، در سال 566، آلیات تصمیم گرفت نظام لیدی را در تمام منطقه کاریا، ایالت واقع بین شهرهای میلت و فوسه در جنوب غربی آسیای صغیر گسترش دهد. زیرا در آن صورت، کاروانهای سارد مستقیما به دریا راه پیدا می کردند. اما شهر اسمیرن به مقاومتی سرسختانه برخاست و در نتیجه لیدیاییها آنجا را ویران کردند، به قتل آم مردم پرداختند و انبارها را تاراج نمودند. با این حال انهدام اسمیرن به سود افس تمام شد که پس از میلت تبدیل به بزرگترین بندر منطقه شد. سپس آلیات به شهر کلوفون میان رودهای هرموس و میاندر پرداخت. شهرت داشت که این شهر اموال قابل توجهی دارد اما آوازی آن در عین حال به نیروی سوارکارانش نیز مربوط میشد. آلیات پیشنهاد کرد که ها خدمات سواران خود را به او اجاره دهند و در عوض دستمزد کلانی دریافت کنند. سپس یک روز پس از یک لشکرکشی پیروزمندانه، پادشاه مرمناد تصمیم گرفت دست دستمزد سواران را دو برابر کند و از آنها دعوت کرد جشن پیروزی خود را در سارد برگزار کنند که آزوغه و شراب فراوانی در آنجا گردآوری شده بود. ها که مشکوک شده بودند، اسبان خود را نزد ستوربانان گذاشتند و خود بدون اسب وارد شهر شدند. اما به محض ورود سربازان لیدیایی ها را بستند و روی آنها ریختند تا سرهایشان را قطع کنند. جنگ سواحل به پایان خود نزدیک میشد. افس درخشان نه نیاز به فت داشت، نه اینکه با زور زندگی کند و نه با خیانت. مردی که بر آنجا حکومت می کرد، ملاس دوم یکی از دختران آلیات را به زنی برای پسر ارشد خود گرفت. تيه کمی بیش از یک قرن سپاهیان لیدی موفق شده بودند بر مجموع آسیای صغیر مسلط شوند آنها کیمری ها را به سوی کوه شمالی خود واپس رانده و مجموع فریگیه این فلات مرکزی حاکم بر دره ها و سواحل را تصرف کرده بودند به خصوص از طریق پیمان اقتصادی و نظامی یونانیان آسیایی را مجبور به اطاعت از اراده خود کرده بودند بی آنکه با مخالفت یونان و خدایان ایشان روبرو شوند. توازن میان یونانیان و لیدیایی ها که گوکس رؤیای آن را در سر داشت اکنون تحقق یافته بود. سارد تبدیل به شهری بازرگانی و لیدی تبدیل به قدرتی دریایی شده بود و لیدیایی ها واسطه های حقیقی میان شرق و غرب بودند. بخش اعظم این موفقیت دستاورد آلیات بود. این پادشاه پس از مرگ چنان نزد افراد معمولی، کاسبکاران، پیشوران و درباریان که از جهش تجارتی گسترده سارد سود برده بودند محبوب بود، که تصمیم گرفتند در هزینه ساخت یک مقبره عظیم برای او شرکت کنند این بنای مخروطی شکل عظیم بردشت هرموس مسلط است و بیگمان یکی از بناهای نادر باستان است که به اراده مردم و نه به دستور مقامات و به اجبار ساخته شده است مردم با ساختن این مقبره می‌خواستند علاقه و احترام خود را به او نشان دهند در سال 561، درست پس از مرگ آلیات، لیدی قدرتی بین المللی محصوب می و اکنون که در ساحل رود حالیس استقرار یافته با چنین دشمنی روبروست. اما کرزوس آلیات نیست. شاه جدید لیدی بر امپراتوری شکل گرفتهی حکومت می کند. احتمالاً به سازندگان این امپراتوری بیشتر علاقه دارد تا به وارسان آنها. سرور جدید پارس‌ها ها خود را بیشتر شبیه آلیات می‌داند و کرزوس را با خود برابر نمیشناسد حتی اگر شهرت او از پدرش بیشتر باشد کرزوس مرد تحت نفوذ سابقه کرزوس با موفقیت در یک سلسله عملیات مالی شروع شده بود آلیات در آن زمان میخواست مجموع کاریا را فتح کند و کرزوس فقط والی ساده ایالت آدرامیت بود. او نمی‌توانست چندان به اعتماد دربار سلطنتی به خود ببالد نه حتی امید داشت جانشین پدر شود. در واقع آلیات پسر دیگری به نام پانتالون داشت که از شاه اهل یونیه بود. بنابراین تمام یونانیان ساکن سارد پشتیبان پانتالئون بودند با این امید که روزی شاهی با فرهنگ یونانی و حساس به منافع مهاجرنشینهای یونانی بر لیدی حکومت کند در سال 566 آلیات تمام والیان خود را فراخواند تا با سپاهیان خود به او ملحق شوند چون میخواست حمله عمومی علیه کارییا تدارک ببیند رزوس برای جلب توجه و علاقه پدرش ناچار بود سپاهی حقیقی و مجهز تهیه کند و از آنجا که پول و امکانات کافی نداشت تصمیم گرفت از یکی از ثروتمندترین ترین سوداگران لیدی به نام سادیات وامی بستاند اما سادیات امتناع کرد و گفت اگر من به تمام پسران آلیات قرضی بدهم چیزی برای خودم نمی‌ماند. آنگاه بر آن شد تا به افس برود و پول را از آنجا تهیه کند. کرزوس به برکت این یارانها سپاهیان خود را مجهز کرد و اولین کسی بود که به یاری پدر شتافت و نظر مساعد او را جلب کرد. کرزوس با این وام به معاملات مالی خود ادامه داد. اما شاهزاده جوان به امور معنوی و سازمان دولت نیز علاقه داشت. در اینجا باید به رویداد مهم دیگری در زندگی او اشاره کرد که همانا آشنایی با سلون بود. در سال پانصد کمی قبل از لشکرکشی به کاریا، سلون آتنی سفری به سارد انجام داد. این مرد به دلیل اصلاحاتی که در آتن انجام داده بود، در میان همشهریانش در زمینه حقوقی و سیاسی اعتبار فراوانی داشت. رزوس که در آن زمان 26 ساله بود فرصت یافت مدتی نزد این استاد آتنی که نماد تمام نبوغ یونانی بود آموزش ببیند. سلون از طبقه مالکان عرضی ثروتمند بود، بی آنکه از ثروت خانوادگی که پدرش حیف و میل کرده بود بهره‌ای ببرد. پس آتنی جوان مجبور شده بود به امور بازرگانی و صداگری بپردازد و مسافرت‌هایی به مناطق دیگر بکند. او به ترتیب آموخت که به خلقیات، آداب و رسوم و اعمال دیگران و به اصول اساسی زندگی در جامعه و روابط بین المللی توجه کند. در آن زمان شهر آتن در اثر مبارزات درونی و در واقع جنگ داخلی فرسوده شده بود. وقتی سلون، آرکون شهر، شخص اول جمهوری در سال 594 شد، هدف خود را آشتی ملی قرار داد. او به تدریج، بیشتر شهروندان تبعیدی یا محروم از حقوق سیاسی را مورد عفق قرار داد. او که از پشتیبانی پیشوران، بازرگانان و مالکان عرضی کوچک برخوردار بود، به آسانی می توانست، با صدای بلند و قوی سخن بگوید تا خارجیان و خانواده های آنها که برای کار به آتن آمده بودند، حق شهروندی را به سرعت به دست آورند، البته تنشها همچنان باقی بود اما روابط اجتماعی میان آتنیان بهبود یافت سولون همچنین به توسعه اقتصادی شهر توجه داشت و پول ملی را به جریان انداخت تا وضع صادرات و تجارت میان دولت شهرهای مختلف منطقه را بهبود بخشد او برای روستاها آب تأمین کرد و امنیت کشاورزان را در مقابل گرگهایی که از جنگل حمله میکردند تأمین نمود و بدین ترتیب حمایت طبقه کشاورز را نیز جلب کرد وانگهی ثروت ارزی باعث شد امور صنعتی و بازرگانی شهر نیز بهبود یابد چنان که تا قبل از آن به چنین حدی از رفاه نرسیده بود از سوی دیگر تمام شهروندان از هر تباری که بودند یا هر گونه فعالیتی که داشتند می توانستند به عضویت مجمع یا مجلس آتن و دادگاه های عام درآیند دستاورد سلون در زمینه سیاسی اجتماعی و اقتصادی فراورده دانش و درایت او بود اصلاحگر آتنی هنگام مسافرت به لیدی آمده بود تا بگوید چگونه آتن توانسته است به آرامش اجتماعی و ثروت اقتصادی دست یابد. بدین ترتیب کسی که آتن را آرام و ثروتمند کرده بود برای لیدیایی های روشنفکر و به خصوص کرزوس جوان که تشنه آموختند بود جاذبه شدیدی داشت. رزوس تحت نفوذ اندیشه های دیگر به ویژه های تالس میلتی قرار داشت. این اخترشناس و فیلسوف که واقعه خورشید گرفتگی در روز نبرد هالیس را پیش بینی کرده بود، از نزدیکان و مقربان دربار عالیات بود. سخنان او که یونانیان آنها را گردآوری و تدوین کرده بودند، بیگمان برای تمام کسانی که با او آشنا بودند، شناخته بود. به حوش باش تا مبادا سخنانت تو را نزد کسانی که سوگند وفاداری به تو خوردهاند اند منفور سازد در نواختن کسانی که تو را به دنیا آوردهاند تردید نکن بزرگترین رضایت جلب خوشحالی آنهاست نادانی بار سنگی نیست حتی اگر ثروتمندی بتالت را از خود بران خوشبختی خود را پنهان کن تا رشک کسی را بر سنجیده عمل کن به هوش باش تا به همه کس اعتماد نکنی اگر حاکم هستی نخست حاکم خود باش یکی از شاگردان و مریدان تالس آناکسیماندروس درباره منشأ گیتی و حیات عقاید بدیعی پرورده بود نخوست بر وجود جهان بیکرانه در فضای بیکرانه تأکید کرد و خواستگاه تمام موجودات را توده نامعین فرض کرد که نخست از آن گرمی و سردی سپس خاک، آب، هوا و آتش نشعت گرفتند. آنکسیماندروس معتقد بود که خدایان مستقیما انسان را نیافریدند بلکه انسان از ماهی پدید آمده است. این فوران اندیشه های فلسفی باعث نمیشد لیدیایی ها از دغغه دوگانه خود درباره امور اقتصادی و نظامی فارغ باشند. اما مورد تردید قرار دادن دایمی معارف کنجکاوی درباره منشأ همه چیز و انسان پرسش درباره آزادی انسان و قدرت خدایان باعث میشد بر سیاست های بازرگانی یا نظامی مهر عدم اطمینان زده شود. رزوس، شیفته کسرت این تعلیمات و حساس به زیبایی دیگر فرمانده جنگی ساده ایمانند نیاکان خود نبود کوروش پارسی پسر کمبوجیه که در آن زمان برابر لیدیایی قرار گرفته بود چون این فرهنگی نداشت او وارث معرفت تنازع بقا بود که به کلی از نظری سازی و نظریه پردازی دوری می کرد. گرچه جستجوی نیکی، راستی و اراده به عمل سازگار با اصول خرد جزئی از فرهنگ او به شمار میرفت. کوروش و نیاکان او اندیشه خود را درباره اقتصاد و بازرگانی چندان پرورش نداده بودند. جستجوی امکانات زیست داد و ستد پایا پای، کشف چراگاه های فراوان برای اسبان، فتح سرزمین های زیاد و حاصلخیز به اطاعت واداشتن مردم سخت کوش، آرمانی کافی برای جنگ جویان آنچان به شمار میرفت که جویای کشف افقهای تازه بودند. کورش در برابر کرزوس، در واقع برخورد دو جهان متفاوت. رزوس به سرعت جانشین شایسته آلیات شده بود، وقتی این امر مسلم شد، یونانیانی که از پانتالئون هواداری می کردند، مادر او را متقاعد کردند که هرچه زودتر برای نابودی کرزوس اقدام کند. شاه دخت یونیهی مادر پانتالئون کوشید تا نانوای شاه آینده را بفریبد و او را وا دارد تا شاه را مسموم کند. اما نانوا ماجرا را به کرزوس اطلاع داد و از آن پس کرزوس در محافظت از جان خود حشیاری بیشتری به خرج داد. کرزوس در 35 سالگی تازه به قدرت رسیده بود که بر آن شد انتقام این توطعه را بگیرد او دستور داد سادیات ثروتمند را که از کمک مالی به او امتناع کرده بود و در توطعه شرکت داشت شکنجه و نابود کنند ثروت او کاملا مصادره و به پیتی کاهن معبد دلفی تقدیم شد کرزوس پس از استقرار بر تخت لیدی حساب خود را با پیندار جبار افس خواهرزاده خیش که کاملا در دسیسه علیه شخص او شرکت داشت تصویه کرد. پیندار نخست قهرمانانه در برابر سپاهیان لیدی مقاومت کرد اما لحظه فرار رسید که ناچار شد به مذاکره برای پیمان تسلیم تندر دهد. او که از روحیه زود باورانه کرزوس نسبت به هاتفان و احترام وی به معابد آگاه بود تصمیم گرفت تمام شهر را وقف الهی آرتمیس کند و دستور داد تمام باروهای شهر را برای نشان دادن محدوده معبد با تناب محصور کنند. سپس به نام این الهه درخواست صلح کرد کرزوس بدون شک به علت خرافاتی بودن اما به ویژه از آن روی که شهر افس پس از انهدام اسمیرن راه ورودی دریای لیدی محسوب میشد، پیشنهاد شاهزاده افسی را پذیرفت. با وجود این، خواستار تبعید پیندار شد و او نیز ناچار شهر خود را ترک کرد. سایر شهرهای ساحلی با آمیزه از اطاعت، احتیاط، تقدیرگرایی و روح مقاومت که صفت خاص این بازرگانان عجیب و جنگجو بود که از یونان به سواحل آسیایی صغیر آمده بودند، اقتدار کرزوس را پذیرفتند. کرزوس نیز فرمان داد، مجسمه بزرگ زرینی از نانوایی که جان او را نجات داده بود، بسازند. او چند سال بعد این تندیس را به معبد آپولون در دلفی تقدیم کرد با این امید که نظر مساعد حاطف را که سرنوشت او را تعیین کرده بود جلب کند. فرشته تلا این طلایی که کرزوس آنقدر به فراوانی خرج می کرد از کجا می آمد؟ تومولوس که مشرف بر شهر سارد بود کوهی از تلا بود. سیلاب‌ها و هایی که از آن سرچشمه می‌گرفت، پیش از آن که به رود هرموس بریزد، مقادیر زیادی شن و ماسه همراه با ذرات طلا به پایتخت لیدی می‌آورد. ها در درجه اول از این فلز گرانبها و فاسد نشدنی برای ساختن اشیایی که وقف الهه‌ها می‌کردند، استفاده می‌نمودند. مثلا گوکس اولین مرمنات تقدیمی‌های ذرین بسیار برای معبد دلفی فرستاده بود. کرزوس سنتی را که اجدادش باب کرده بودند حفظ کرد و آن را قاعده اول سلطنت خود قرار داد و در واقع فلسفه حقیقی برای هدیه طلا به وجود آورد اما گرچه بخشندگی او نسبت به خدایان حد و مرزی نداشت مردانی را که به این خدایان خدمت می‌کردند نیز بی‌نصیب نمی‌گذاشت و امیدوار بود بدین ترتیب دوستان و متحدان بیشتر و قویتری پیدا کند او به ویژه وقتی خواست عقیده پیتی حاطف معبد دلفی را درباره سوالی سؤالی که آزارش میداد بداند گشاد دستی افرادگونهی نشان داد. پرسش این بود که آیا به پارس ها حمله کند یا نه؟ به این مناسبت آپولون یک بار صاحب گنجینهی شد که ارزش آن را نمی توان محاسبه کرد. سد و هفته آجر تلایی که تعداد زیادی از آنها از طلای ناب بود، مجسمه ای از یک شیر ایزن از طلا دو قده بزرگ یکی از طلا و دیگری از نقره چهار جام بزرگ نقره ای شمشهای نقره و بالاخره تندیس طلایی مشهور نانوا پادشاه لیدی مراقب بود که مبادا معابد دیگر بی‌نصیب بمانند و هدایای متعددی به کاهنان معابد متعدد یونان تقدیم داشت بخشش او شامل مردم نیز میشد. او دستور داد به هر یک از ساکنان دلفی دو سکه طلا بدهند در عوض دلفیان حق درجه اول مشاوره با هاتف معبد معافیت از پرداخت بعضی مالیاتها برای اتباع او حق دایمی شهروندی و بالاخره حق نشستن در ردیف اول هنگام مسابقات مذهبی را به او اعطا کردند کرزوس به برکت طلای خیش تبدیل به دوست ممتاز یونانیان شد شاه لیدی که در جماعت یونانی پذیرفته شده بود می توانست خواستار اتحاد یونانیان شود و از آنها حمایت نظامی و اقتصادی طلب کند اسپارتیان با آنکه از نظر روحی مردمان شکاک و خشن بودند از زودباوری نسبت به خدایان و نیز از حرس و آز مستثنا نبودند آنها هیئتی به سارد برای جستجوی طلا فرستادند تا بتوانند مجسمه طلایی از اپولون بسازند و مایل بودند بهای به واقعی آن را نیز بپردازند. اما با نهایت شگفتی متوجه شدند که کرزوس این طلا را به رایگان به آنها می دهد. کرزوس به اعتماد اسپارت نیاز داشت. پس از این حرکت گشاده دستانه بیگمان دیگر هیچ مشکلی برای کسب دوستی آنها وجود نداشت. همچنین کرزوس به یک خانواده بزرگ پاتریسیان آتنی به نام آلکمون اجازه داد به پاس خدماتی که به معبد دلفی کرده بود هرچه میخواهند از گنجینه کرزوس وام بگیرند. خانواده آتنی این پیشنهاد را دست کم نگرفتند و از این راه ثروتمندترین مردان آتن شدند. به ترتیب تلا به کرزوس امکان داد روابط میان یونان و لیدی را در راه بلند های متعدد خود دگرگون کند. اما پارسیان کوروش از این مسائل و تجارت طلا اطلاعی نداشتند، البته آنها از تأثیرات نیمه جادویی این فلز آگاه بودند، اما هنوز به پیشرفتهای لیدیایی ها یا مصریان علاقه نشان نمیدادند. دادند. هرودوت گزارش می دهد که بعدها وقتی کوروش خود را ناچار دید، با اسپارتیان بجنگد، جنگت تحقیر خود را نسبت به نوع زندگی آنها پنهان نکرد. من تا کنون هیچگاه از این نوع مردم که میدانی در وسط شهر خود دارند، و در آنجا جمع میشوند تا با سوگند سر یکدیگر کلاه بگذارند، بیمی نداشتم. و در واقع به همه یونانیان و کنایه زد چون آنها برای خرید و فروش بازار برپا میکنند ولی پارسیان در کشور خود به هیچ وجه بازار ندارند. برای پارسیان داد و ستد پایا پای قوانین خود را داشت، آنها کفش، چاروخ، سبزیجات یا مشروبات را با اشیای کوچک ساخته شده مانند بادبزن گردن بند یا کارد مبادله می‌کردند این انتقال مالکیت تا وقتی بود که در یک روستا انجام می‌گرفت اما به محض خروج از روستا انتقال کالاها یا فقدان اعتماد باعث توقف مبادلات می‌شد جنگجویان اصیل آنشان چندان در قید این مسائل نبودند در عوض لیدیایی ها از قبل به مبادله محصولات کشاورزی با مقادیر گوناگون فلزات گرانبها طلا نقره و نیز برنج عادت داشتند بدین ترتیب پول که حمل و نقل آن آسان بود به طور قابل توجهی روابط بازرگانی را تسهیل کرد اما کمیت فلزاتی که برای معامله مورد استفاده قرار می گرفت و میزان خلوص آن باعث بیاعتمادی و نگرانی بود در بازارها شروع به وزن کردن تلا و نقره کردند وزن کنندگان تلا که اغلب افراد شیادی بودند در تمام بازارها وجود داشتند. از زمانی که مرمنادها بر تخت سلطنت سارد جلوس کردند، تحولی در تجارت پدید آمد. نخست، گوکس، سپس آلیات و به خصوص کرزوس، ارزش فلزات گرانبها را با زدن مهر یا انگی بر روی قطعات طلا و نقره که درست بودن آن را مشخص می کرد، تضمین نمودند. سپس استفاده از پول نخست آزاد و سپس اجباری شد. طلای پاکتول در واقع الکترون بود که مخلوطی از طلا و نقره بود. کرزوس دستور داد پولش را خالص کنند و طلای لیدی به سرعت نابترین طلای جهان شناخته شد. او همچنین استفاده از نقره را که یونانیان یک قرن قبل رواج داده بودند باب کرد. بدینسان سان شنهای تلادار قله توملوس به صورت قطعات طلا در بازار وسیله مبادله قرار گرفت و توسعه قدرت کرزوس را تسهیل کرد. اما شاه سارد علاوه بر سیاست مالی ماهرانه و اتحاد مذهبی با دلفی و اتحاد نظامی با اسپارت، امپراتوری لیدی را در زمینه اقتصادی نیز سازمان داد. وانگهی میراث سلطنتی نیز عظیم بود. تقدیمی های کرزوس به خدایان یونانی از اموال شخصی او صورت می گرفت. عادت به آب خوردن به جای شراب. بنابر در زمان اقتدار کرزوس لیدی به مرکزی تجاری مالی تبدیل شد. که تا آن زمان سابقه و رقیب نداشت با وجود جهان شهر، انترناسیونالیسم دربار لیدی مراکز تجاری در آن سوی دریا هنوز آنقدر نبود که اجازه دهد قلم روی کرزوس به قدرتی دریایی تبدیل شود با وجود آنکه سرمایهداری به سرعت رواج یافته بود بیشتر مردم لیدی کشاورز و بسیار وابسته به زمین، کوه ها و دره خود بودند سفرهای بزرگ دریایی به ندرت انجام می‌گرفت و کرزوس پس از آنکه بدون شک تصمیم گرفت نیروی دریایی خود را برای کنترل جزایر متعدد موجود در نزدیکی سواحل لیدی توسعه دهد از این کار چشم پوشید در حال حاضر، ارباب جدید اکباتان یعنی کوروش در صدد آن بود که قدرت خود را در ماد تقویت کند و با موفقیت بیشتر دست نشاندگان سابق شاه آستیاگ را به اطاعت وادارد. کرزوس در این اندیشه بود که آیا بهتر نیست جلوی سعود به ظاهر مقاومت ناپذیر کوروش را بگیرد؟ کرزوس مردی نبود که بدون در نظر گرفتن جوانه به احتیاط به ماجراجویی نظامی کشنده شود، از این رو، همانطور که همیشه کرده بود، تصمیم گرفت با خدایان مشورت کند. از این رو، قاصدانی نزد حاطف دلفی و پیشگویان دیگر روانه کرد. منظورش از این اقدامات، آزمایش دانش و بینش قیبگویان و مزید اطمینان و پیبردن به این حقیقت بود که آیا می تواند به پیروزی امیدوار باشد و با دولت پارس مقابله کند؟ به قاصدانی که برای سنجش بخت و اقبال خیش فرستاده بود دستور داد در روز صدم از تاریخ عظیمت از کاهنه معبد بپرسند که در همان روز کرزوس به چه کاری سرگرم است و فرمود که پاسخ پیشگویان را بنویسند و همراه خود به سارد بیاورند. پس تا با حالت توکل قدم به درگاه معبد گذاشتند و پیش از آن که بر طبق دستور پادشاه لب سخن بکشایند حاطف در شعر زیر جواب داد من قدرت آن را دارم که دانه شن سواحل را شمرده و سطح اقیانوس را مساحت کنم حرف کرها و لالها و صدای سکوت مطلق را می شنوم بوی لاک پشت به مشامم میرسد. گوشت گوسفند در دیگه مسی می جوشد، پاتیل زیرین مسی و سرپوش آن نیز مسی است. و این دقیقا کاری بود که در آن روز کرزوس انجام داده بود. اکنون کاری برای کرزوس باقی نمانده بود جز آن محبت این حاطف را جلب کند و در باره موضوع اصلی نگرانی خود یعنی پارس با او به مشورت بپردازد. رزوس تقدیمی ها را گرد آورد و آن را به دلفی معبد آپولون فرستاد. این معبد که در دامنی پارناس قرار گرفته بود، به محلی استثنایی مشرف بود. از بالا به پایین، مسیل فئیستوس جریان داشت و به راز و رمز معبد می افزود. در دور دست، خلیج ایتعا فراخی زیبایی به این محل می بخشید. فرستادگان کرزوس با افتخار تمام چنان که شایسته چنین شاهی بود، پذیرفته شدند و هدایای خود را به کاهن آپولون تقدیم کردند. هیئت نمایندگان کرزوس به درون معبد هدایت شدند، اما بنا رسم معمول اجازه نزدیک شدن به محل را نداشتند و کاهنان سؤال کرزوس را مطرح کردند. شاه کرزوس، شاه لیدی، آیا باید به جنگ پارسیان برخیزد و آیا باید با متحدان خود به این کار اقدام کند؟ از پاسخ ارزشمندی که کاهنان برای شاه لیدی آوردند، کرزوس نتیجه گرفت باید پیش از آنکه قدرت پارس به راستی شکل تحدید کننده ای بیابد، به حمله بپردازد. حاطف هیچ شکی باقی نمیگذاشت. پیروزی به شرطی به دست میآمد که پادشاه سارد بتواند با شجاعترین یونانیان متحد شود. خدایان به کرزوس میگویند که اگر با پارس ها جنگ کند امپراتوری بزرگی را ویران خواهد کرد اما در ذهن پسر آلیات مطلب روشن بود این کوروش بود که یک امپراتوری بزرگ تشکیل داده بود مگر کوروش نبود که بر سراسر فلات ایران تا های آسیایی صغیر حکومت میکرد این قدرت تازه به دوران رسیده باید در نطفه خفه میشد و اگر خدایان به کرزوز توصیه کرده بودند که به نیرومندترین یونانیان بپیوندد شاه لیدی در این باره هیچ نگرانی نداشت چون میتوانست روی قدرت ماهرترین آنها در فن جنگ یعنی اسپارتیان حساب کند بل حاطف گفته بود که وقتی قاطری شاه ماتها شود او یعنی کرزوس چاره ای ندارد جز آنکه مسیر سنگ لاخ هرموس را در پیش گیرد و بدون شرم از بزدلی بگریزد پادشاه لیدی خوب می دانست که هر حاطفی اصولا در پیشگویی های خود راز و رمزی دارد و پیام آپولون البته همیشه نباید زیاد روشن باشد اما راستی مفهوم این واجه قاطر چه بود؟ می دانیم که کرزوس این استعاره مبهم را چگونه تفسیر کرد هیچگاه قاطری که از یک اولاق و یک مادیان به وجود آمده است نمیتواند بر ملتی مقرور مانند ما تا حکومت کند در نتیجه به هر صورت خطر شکست به دست رقیب بلقوه لیدیایی ها را تهدید نمی کرد پس کرزوس تصمیم به جنگ گرفت اما از آنجا که چندان دلاور نبود نخست بر آن شد که به اتحاد نظامی بپردازد او نقشه خود را به مصریان و بابلیان اطلاع داد. ایشان نیز پذیرفتند که به او ملحق شوند. اسپارتیان نیز قبلا کشتی جنگی خود را مجهز و سپاهیان جنگی را آماده کرده بودند. فرعون مصر آماسیس نیز نیروهای جنگی خود به گفته خودش 120 هزار سرباز را فرستاده بود و قبرس دست نشانده مصریان نیز سپاه اعزام کرده بود. نبونید پادشاه بابل فقط منتظر اشاره متحد خیش بود چنانکه فنیقیان خراجگزار بابل نیز چنین وضعی داشتند ها و تمام یونانیان آسیا نیز ناچار شده بودند مردان مسلحی بسیج کنند بالاخره چند تن از مأموران لیدی به تراکیه رفته بودند تا از آنجا مزدور اجیر کنند تمام این نیروهای گوناگون برای تشکیل اتحادی شکست ناپذیر هیچ چیز کم نداشتند. با این حال یکی از نزدیکان کرزوس به نام ساندنیس که به خردمندی مشهور بود اندرزی به او داد که در میان لیدیایی رواج یافت. بادشاه ها بر ضد قوم و ملتی قصد جنگ داری که شلوار چرمین میپوشند و دیگران که جامعه ایشان نیز از همان جنس و سرزمین آنها به قدری خشک و خالی است که فقط به آنچه فراهم شود اکتفا می کنند و هیچگاه آن مقداری که خواستارند دارند ایشان شراب نمی نوشند. آب تنها نوشابه آنهاست. و هیچ محصول مرغوبی در کشور آنها به دست نمی آید و حتی انجیر برای تنقل ندارند و بر فرض که چون مردمی را مقهور سازی قلبه بر ایشان برای تو چه سود دارد؟ میدانی که آنها چیزهای قابل توجهی هم ندارند تا لایق تصرف باشد. در عوض اگر آنها بر تو چیره شوند نیک بیاندیش چه چیزهایی که از دست نخواهی داد؟ زیرا که ایشان تا یک بار مزه خوشی و نعمتهای لیدی را بچشند چنان به این نعمتهای لذیذ و عزیز چنگ خواهند انداخت که با هیچ کشاکش و جنگی از دست نخواهند داد من به سهم خود خدایان را سپاسگزارم که اندیشه دستندازی بر لیدی را در سر اهالی ایران نینداختند شادمانی بزرگ حاکم بر ارتش مرز آرام بود پادگان مرزی که مادها از زمان آستیاک در آنجا مستقر کرده بودند با آنکه تحت اختیار کوروش بودند مانع عبور کاروان ها و حوادثی که به بروز جنگ بی ایجاد نمی کردند. اما کرزوس برای حمله به کوروش سخت مصمم بود پس در بهار سال 546 سپاهیانش را از رود مشهور هالیس عبور داد و پتریا و کاپادوکیه را اشغال کرد سپس تمام منطقه واقع در اطراف پتریا را منهدم و غارت کرد و منتظر حوادث بعدی نشست کوروش میدانست با چه کسی سر و کار دارد دشمن امروز ایران از شهرتی استثنایی برخوردار بود نخشه های بزرگی در سر داشت و با هوش و میانه رو بود اما خوشقلبی او همراه با زائقه ای افراتی برای شکوه و تجمل بود کرزوس با خوشبینی کودکانه فقط به قدرت طلا اعتماد داشت در واقع پیش از که کرزوس از رود هالیس عبور کند شاه جدید ایران از طریق یکی از اهالی افس به نام اوریبات آگاه شده بود که لیدی خود را برای حمله آماده می کند او ریباد که معموریت داشت در پلوپونز به استخدام سرباز بپردازد مقدار زیادی طلا همراه داشت. او بیگمان روحیه ای داشت و نام او تا مدتها برای یونانیان مترادف با خائن بود. نخستین واکنش ایران در مقابل چنین وضعی آن بود که اقبه سپاهیان خود را حفظ کند. از مدت‌ها پیش ایران تحریکات نبونید را تحمل می کرد که البته مستقیماً نگران کننده نبود اما به هر حال خطر محسوب می شود. اما در حالی که لیدیایی از شمال ایران را تهدید می کنند باید به سوی جنوب حرکت کرد؟ رابطه نیروها به آسانی به کوروش امکان می‌داد، بابل را فتح کند و اگر نبو کد پایتخت آنها را آنقدر مستحکم نساخته بود به تصرف پایتخت آن بپردازد. حمله به شهر مردوک مستلزم محاصری طولانی و اطلاف وقت زیادی بود که با توجه به خطرات کاپادوکیه ارزش نداشت. به محض که رهبر جدید ایران از خبر اوریبات آگاه شد، تصمیم گرفت اکباتان را ترک گوید. از آنجا که نمی توانست به طرف شمال برود و نه به سوی جنوب، لازم بود نخست راه طبیعی هجومها یعنی در دجله را در پیش گیرد. تا بهار سال پانسد هیچ چیز فرصت هدایت سپاهیانش را به خارج از قلم ماد و پارس فراهم نکرده بود. کوروش، ضمن ترک اکباتان، شهر مستحکمی که مانند آشیانی اقاب بر ها حاکم بود، فکر می کرد که با سرنوشت روبرو می شود. سیاسی او یک واقعیت بود. او تا کنون به هیچ جنگ بین المللی اقدام نکرده بود، بنابراین به سنجش خطری پرداخت که در پیش گرفته بود تنها اعتماد او به سپاهیانش بود که تشنه عمل بودند وقتی درخشش آبهای دجله در افق پدیدار شد گروش توانست گستردگی حاصل خیزی این جلگه عظیم میان درود یعنی بینون نهرین را حدس بزند پسر کمبوجیه فرصتی برای تردید نداشت به او خبر رسید که شاه سارد به تصرف کاپادوکیه که امیدوار بود با این کار سهم خود را در انهدام امپراتوری مادها ادا کند، قناعت نکرده به اشغال پاتریاب پرداخته، مردم سوریه را قتل عام کرده و عملاً سیاست زمین سوخته را در پیش گرفته است. این وحشیگری با صفات ظرافت و انسانیت که معمولا به او نسبت می‌دادند، مقایر بود. کرزوس پرده از جاه تلبی خود برداشته بود و به چیزی جز متوقف کردن سعود کوروش و وادار کردن او به مصالحه نمی اندیشید. کوروش داشت زندگی جدیدی را با عنوان فاتح آغاز میکرد. او از دجله به سوی شمال بالا رفت و شهر اربیل را تصرف کرد. شهری که میان دو شاخه رود بزرگ، زاب کوچک و زاب بزرگ واقع شده بود. ویران‌های نینوا را که نماد امپراتوری ویران شده‌ای به دست جنگجویان شرقی بود، ملاحظه کرد، به تصرف حران پرداخت که از مدتها پیش در دست بابلیان بود و سرانجام به سوی کلیکیه به راه افتاد. کوروش به مشکلاتی که کرزوس و پیشینیان او همواره با یونانیان آسیای صغیر داشتند، آگاه بود. بنابراین مأمورانی به شهرهای یونانی فرستاد تا به آنها پیشنهاد کنند علیه ستمگران سر به تقیان بردارند. اما نه اسمیرن، نه افس و نه کلوفون چنین پیشنهاد خطرناکی را نپذیرفتند. فقط میلت با احتیاط بیشتری عمل کرد و در اندیشه آینده سیاست بیطرفی در پیش گرفت. این ناکامی کوروش را در حرکت خود متوقف نکرد. شاید از سر احتیاط چون به طور قطع در اندیشه نشان دادن عظمت روح و فراخی بلند پروازی خود بود شاه لیدی را وادار کرد به آرایش سپاه خود بپردازد تا از درگیری مرگبار اجتناب شود او پیشنهاد کرد که درخواست بخشش کند و خود را دست نشانده شاه ایران اعلام نماید در آن صورت شاه سارد می توانست قلمرو خود را به عنوان ساتراب حفظ کند مرمناد پاسخ داد که او برخلاف پارس ها که بندگان سابق مادها بودند و بردگان آینده لیدی آی ها خواهند شد هرگز از کسی اطاعت نکرده است. بنابراین کوروش تصمیم به حمله گرفت. کلیکیه که مستقل مانده بود نقش یک دولت میان رو را بین لیدی و سامیان به خصوص سوریه ایفا می کرد. اهالی این منطقه پذیرفتند که به کوروش خراج بپردازند و بدین ترتیب این منطقه تبدیل به نخستین قطعی شد که شاه سابق آنشان کوروش میتوانست در بازی خیش به کار گیرد. سپس سپاهیان پارس و متحدان آنها وارد کپادوکیه شدند، از شاخه جنوبی رود هالیس عبور کردند و در حوالی پتریا در میدان وسیعی که رودهای آن را احاطه کرده بود، در برابر لیدیایی ها قرار گرفتند. بدین ترتیب، کرزوس امتیاز قابل توجهی به دست می آورد. شهر در چهار راه دو جاده بزرگ واقع شده بود، جاده مشهور شاهی که به او امکان میداد از متحدان اسپارتی خود کمک بگیرد و جاده ای که تارسوس را به سینوپ میپیوست و راه کمک ارامنه به او را باز میگذاشت اما اگر اعتلاف لیدی فاقد یک پارچگی بود و سپاهیانی که آن را تشکیل میدادند تا کنون هرگز در کنار یکدیگر نجنگیده بودند در عوض ارتش کورش سرشار از شور و شوق بود سرعت پیشرفت رهبر آنها پیروزی هایی که علیه آستیای پیر به دست آورده بود، مهارتی که با آن اکباتان را تصرف و اداره کرده بود، همگی در پارسیان و متحدان ایشان روحیه ایجاد کرده بود که برای هر آزمایش سخت آماده بودند. به نظر هرودوت شادی بزرگی بر ارتش ایران حاکم بود، این خوشبینی با سلاح هایی که در اختیار فرماندهان جنگی تحت فرمان کوروش قرار داشت نیز قابل توضیح است. سوار نظام از ده هزار مرد جنگی تشکیل شده بود. ایرانیان حدود صد ار در اختیار داشتند که وسیله هولناکی بود و می پیاده نظام حریف را درو کند و از پای درآورد. عرابه به عصب برگستواندار و جوشن پوش بسته شده اند و رانندگان آنها در داخل برجک‌های چوبی ایستادهاند و زره بتن و کلاه خود به سر دارند تا تمام آن بخش از بدن آنها که از برجک بیرون است محفوظ و در امان بماند. به علاوه دازهای آهنی بر محور چرخها استوار شده اند زیرا عرابه نیز به سرعت به میان صفوف دشمن رخنه می کنند. این ارابه ها که همه چیز را در مسیر خود درو می کردند، پیشرفت ای در زمینه تسلیحات جنگی به شمار می آمدند و از این لحاظ برتری بیچون و چرایی به پسر کمبوجیه می بخشیدند. شاه ایرانیان سلاح جدید دیگری نیز در اختیار داشت و آن شترانی بودند که بر هر یک دو کماندار نشسته بود و به محض ورود به صحنه نبرد حراس زیادی در دل دشمن ایجاد میکردند. بدین ترتیب ارتش ایران اطمینان خاصی به نتیجه پیکار داشت اما گزنوفون حکایت میکند که جاسوسان کوروش اخبار نگران کننده ای گزارش دادند کرزوس به فرماندهی عالی سپاهیان متحد علیه ایران انتخاب شده بود مزدورانی که دست مزد کلانی میگرفتند به ویژه اهالی تراکی مسلح به شمشیر بودند مصریان به زودی با نیروی زیاد به شاه سارد ملحق می شدند، قبرسیان، کیلیکی ها،, ها، اعراب، فنیقی و نیز بابلیها در راه بودند و به زودی می رسیدند. ها و ائولینها مجبور شده بودند، سربازان خود را اعزام کنند. لیدیایی با اسپارتیان به توافق رسیده بودند، قرار بود تمام این نیروهای نظامی در کرانه پاکتول به یکدیگر بپیوندند. با این حال کوروش به سرعت ایمان سپاهیانش را به پیروزی تقویت کرد. او در خطابهی پرشور ثابت کرد که دشمن بیش از آنها باید در حراس باشد و به توصیف احساسات حریفان خود در مقابل نیروهای پرداخت که برای قلبه بر آنها آمده بودند. عرابه ما نمایانگر نیرویی شکست هستند و شطران برای رماندن اسبان سواران دشمن کافی خواهند بود. سرانجام شاه ایران یادآور شد ما با برچ هایی پیش خواهیم رفت که از بالای آنها از افراد خود محافظت می کنیم و با تیرهای خود دشمن را سرکوب می سازیم و مانع از آن می شویم که در زمین صاف و بیدرخت و هموار به جنگت. جای ترس از کرزوس که بزدلتر از سوریانه است نیز وجود ندارد، همان بهتر که آنها به اجیر کردن خارجیان بپردازند، با این امید که به جای آنها بهتر بجنگند به و از خود آنها بهتر باشند. و سرانجام کوروش در پایان خطابه خود نتیجه گرفت که اگر با وجود این گفتار صادقانه من بعضیها نیروهای دشمن را هراسانگیز میابند، دوستان عزیز، من عقیده دارم همان بهتر که اینان نزد دشمن بروند زیرا در آنجا برای ما مفیدتر هستند تا اینجا پیشوای جوان ایران به خوبی میدانست که اعتماد لشکر در عین حال به نظارت مدیریت تدارکات آزوقه و سلاح برای سپاهیان بستگی دارد او مراقب هر نکته جزئی بود پس باید خود را به اندازه کافی به مواد غذایی مجهز کنیم. زیرا بدون آن نمی توانیم خوب به جنگیم و نه زنده بمانیم. در باره شراب هرکس به نوشیدن آن بیش از نوشیدن آب عادت دارد ننوشد. در بخش اعظم مسیر حرکت خود شراب پیدا نخواهیم کرد و حتی اگر مقدار زیادی با خود برداریم هرگز مقدار آن کافی نخواهد بود. برای آنکه از قطع ناگهانی نوشیدن شراب بیمار نشویم بهتر است به توصیه من عمل کنیم. هنگام غذا خوردن آب بنوشیم. اگر از حالا این کار را بکنیم تغییر عادت چندان برای ما محسوس نخواهد بود. سپس باید از عادت شراب نوشیدن پس از غذا به تدریج بکاهیم تا وقتی که بدون آنکه متوجه شویم تبدیل به کسانی گردیم که عادت به نوشیدن آب دارند. شوتران علیه سوار نظام ارتشهای تحت فرماندهی کرزوس در کاپادوکیه ویران و حوالی شهر پتریا مانند چنگالی عظیم به سوی نیروهای ایران پیش می روند. منتها علیه دو جناه لیدیایی چنان از هم باز شده اند که گویی میخواهند دشمن را دور بزنند. در مرکز، در یک صف، ستون طولانی پیاده نظام و سوار نظام مستقیم به سوی کوروش حرکت می کنند. به ظاهر، شاه مرمناد می خواهد سپاهیان آریایی و متحدان او را در گیره ای به هم بفشارد. کوروش در مقابل رزمایش شاه لیدی به سپاهیان خود فرمان حرکت می دهد. به گزارش گزنوفون که صحنه نبرد را حکایت می کند، توجه کنیم. رهبر پارس‌ها سوار اسب شد و فرمان داد تا محافظان او نیز سوار شوند. همه آنها سلاح و تجهیزاتی مانند او داشتند. قبای ارغوانی، زره و کلاه خود روین، منگولی سفید بالای کلاه، شمشیر، زوبینی از چوب درخت سرخک، هر کدام یکی. عصب‌ها دارای زره سر، برگستوان و زره ران روین بودند. سواران نیزه و زره ران داشتند اسلحه کوروش فقط از یک لحاظ با دیگران فرق داشت رنگ سلاح دیگران طلایی مات بود حال آنکه اسلحه کوروش مانند آینه می‌درخشید در سمت راست کوروش کریزانتاز فرمانده سوار نظام و در سمت چپ او آرشام در رأس پیاده نظام قرار داشت پارس‌ها به خط پیش می‌رفتند شاه آنها با گذشتن از دو جناه ارتش خود تا ردیف‌های اول پیش رفت. در آنجا آبرادت شیردل شاه شوش یکی از قدیمی ترین دوستان او و متحد مردم پارس ایستاده بود. این پادشاه درخواست کرده بود که افتخار فرماندهی پیش قراولان را داشته باشد اما احساس می کرد که نبرد در دو جناه رخ خواهد داد. به علاوه او بیم داشت رزمایش انحرافی کرزوس موفق شود و او و مردانش بدین ترتیب در وضع دشواری قرار گیرند شاه ایران تصمیم گرفت به جناه راست سپاهیان شاه سارد حمله کند آنگاه شاه لیدی به سپاهیانش فرمان می داد در مرکز گرد آیند و به سوی کورش بروند با این امید که او را محاصره کنند اما کوروش به منتها علیه جناه کرزوس که از همه جا ضعیفتر بود تاخت و آن را پریشان و وادار به فرار کرد. در همین لحظه نیروهای دیگر کوروش به جناه چپ لیدیایی ها حمله ور شدند. آنگاه عرابه های داستار صفوف عقب را شکافتند و به جناه چپ و راست کرزوز تاختند. سپاهیان تحت فرماندهی آبرادات نتوانستند در مقابل حمله نیروهای مصری مقاومت کنند، سردار متحد کوروش و دوستانش وضع پریشانی یافتند ولی قهرمانی آنها به سپاه پارس امکان میداد خود را به عرصه پیکار برسانند و اسباب زحمت مصریان شوند در این هنگام کوروش به این محل رسید و برای بررسی بهتر اوزا از عرابه بالا رفت او که تحت تأثیر شجاعت مصریان قرار گرفته بود و نسبت به دشمنان مغلوب احساس ترهم می کرد، فرمان داد پیکار متوقف شود. سرانجام، مصریان به شرط آنکه مجبور نشوند، علیه متحد سابق خود، کرزوس، به نبرد بپردازند، پیشنهاد بزرگ وارانه کوروش را پذیرفتند و به سرعت تبدیل به دوستان وفادار و صدیق شاه جدید ایران شدند، شکست کرزوس به هیچ وجه به معنای پیروزی قطعی کورش نبود. لیدیایی ها با سنجیدن وخامت شکست در ادامه نبرد پافشاری نمی کردند و با موفقیت به عقب نشینی منظم می پرداختند. زمستان نزدیک می شد. شاه لیدی ترجیح داد به سارد بازگردد و به انتظار نیروهای کمکی در بهار آینده بنشیند. پس کوروش با نهایت تعجب می دید که سپاهیان هنوز سالم و پیکار نکرده کرزوس میدان نبرد را ترک می گویند. کرزوس پتریا و مجموعه کاپادوکیه ویران را به او واگذار می کرد. که در اثر سیاست زمین سوخته کرزوس و اخراج مردم از آنجا چیزی از آن باقی نمانده بود. اما کوروش می توانست بدین ترتیب خود را منجی و رهایی بخش تبعیدیان نشان دهد و آنها را زیر پرچم خود گرد آورد. چه باید کرد؟ مسئله تعقیب شاه لیدی در امتداد هرموس مطرح نبود. به علاوه کوروش می توانست به عقبه سپاه دشمن حمله کند و پیروز شود. ولی بهتر بود اجازه دهد کرزوس به سارد برگردد و خود را ایمن بپندارد. در حقیقت رزوس میپنداشت که از وضع بدتری اجتناب کرده است. او تعداد زیادی از سپاهیان خود را مرخص کرد چون تصور می‌کرد با نزدیک شدن فصل سرما هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. بعضی از متحدانش که روزهای دشواری را بینی می‌کردند به بهانه آنکه شاه لیدی هنگام زمستان به آنها احتیاجی ندارد، او را ترک کردند. با وجود این کرزوس خود را برای مبارزه بهار آماده می کرد و خواهان پیوستن دوستان به خصوص اسپارتیان بود که وجود آنها را برای پیروزی بر اجتناب ناپذیر می دانست. پادشاه اسپارت به رغم جنگی زمینی که با آرژین ها داشت در پیشنهاد برای فرستادن قوای کمکی در نزدیکترین زمان ممکن تردید نکرد. بنابراین اگر کوروش می‌خواست کرزوس را شکست قطعی دهد باید پیش از آن که او ترتیب اتحاد و اعتلاف جدیدی را بدهد به سرعت دست به کار می‌شد. برخلاف هر گونه انتظار کرزوس شاه آنشان سپاهیان خود را به سوی سارد حرکت داد. وقتی ایرانیان به دشت بزرگ پیرامون پایتخت لیدی رسیدند شاه کرزوس آنچه میدید باور نمی‌کرد. چطور این وحشی از پشت کوه آمده جرأت کرده است به جنگ پادشاه یونانی دوست فرمان روای متمدن ترین امپراتوری زمین و متحد قدرتمندترین ترین ملل جهان بیاید و حتی خود را به پایتخت او برساند این درست بود که کوروش در مقابل حمله لیدی در کاپادوکیه مقاومت کرده بود اما رخنه او به لیدی و حضور او در برابر سارد متصور نبود کوروش با دیدن دشت پهناوری که قرار بود نبرد در آنجا صورت گیرد فهمید که این بار وظیفه اساسی بر دوش سوار نظام دو طرف است. زمینی که پیرامون شهر تیمبره واقع شده بود برای رزمایش‌های بزرگ نیروهای سواره مساعد بود. کرزوس در آنجا مغروران سپاه سوار خود را به صف کرد. مسئله کوروش این بود که به دامی که شاه لیدی برایش گسترده بود نیفتد. نتیجه نبرد میان سواران کماکان نامطمئن به نظر می رسید. جانشین آستیاگ بناب نقشه هارپاگ تمام شطران موجود در اردوگاه خود را جمع کرد و در حالی که مبارزانی بیباک بر پشت آنها نشسته بودند آنها را به میدان فرستاد. هرودوت می نویسد سبب روبرو کردن سوار نظام دشمن با شترها برانگیختن ترس قریزی اسب از شطر است. هیچ اسبی طاقت دیدن یا استشمام بوی شطر را ندارد و گزنوفون میافزاید. اسبان حتی از فاصله دور تحمل دیدن شتوران را ندارند اده از آنها دیوانوار پا به فرار نهادند و اده دیگر رم کردند روی دو پا بلند شدند سواران خود را به زمین انداختند یا به یک دیگر حمله ور شدند این تأثیر طبیعی شطر بر روی اسب است اما سواران لیدیایی که از اسبهایشان به زیر افتاده بودند، معیوس نشدند و پیاده به جنگ با پارسها ادامه دادند. پس از آنکه تعداد زیادی از دو طرف جان باختند، سرانجام افراد کرزوس پیکار به داخل حصار شهر پناه بردند و داخل عرک گرد آمدند. اکنون، کاری جز محاصری سارد برای کورش باقی نمانده بود، شهر با برج و باروهایی مشهور به دیوار سلطنتی احاطه شده و متکی به یک تکیهگاه گاه سخری بود و دست نیافتنی به نظر می رسید. نیز در باره نفوذ ناپذیر بودن پایتخت لیدی وجود داشت. مگر نه اینکه که می گفتند، یکی از زنان شاه سابق سارد به نام ملس یک شیر زاییده بود و این شیر پیوسته از استحکامات شهر عبور می کرد و سارد را از هر حملهای محفوظ می داشت. تصویر این شیر حافظ شهر را بر روی سکه رایج در لیدی نقش کرده بودند هیچ کس پیشبینی نمی کرد که کوروش در زمستان 546 به سارد حمله ور شود او ستاد ارتش خود را در شهر تیمبر مستقر کرده بود که چون پشت به کوه‌های کاتاک کومن داشت بسیار محفوظ به نظر می رسید به نظر می رسید کوروش خواهد با خیال آسوده تا بهار منتظر بماند ولی با توجه به اینکه میدانست در پیش گرفتن سیاست انتظار چه مخاطراتی دارد به سپاهیانش گفت به اولین کسی که راهی از میان حسارها به درون شهر پیدا کند جایزه خواهد داد تلاشهای اده در این کار بیسمر ماند تا آنکه سربازی از قبیله مارد یکی از قبایل ماد که هیروئید نام داشت چشمش به منظری عجیبی افتاد. در یک نقطه از حسار به علت وجود سخری غیر قابل عبور نگهبانی گماشته نشده بود. هیروئید مشاهده کرد که کلاه خود یک سرباز لیدیایی از سرش به پایین سخره افتاد و او به زحمت پایین آمد کلاهش را برداشت و از کور راهی دوباره بالا رفت. هیروید چند تن از رفقایش را که برای دریافت جایزه به طمع افتاده بودند تشویق کرد شبانه از آن راه عبور کنند کوروش نیز در همان زمان با خبر شد و از سپاهیانش را از آن راه به درون شهر و از آنجا به محلی که سپاهیان دفاعی کرزوس جمع شده بودند فرستاد این کار با موفقیت روبرو شد سپاهیان ایران توانستند قسمت پایین و بخش اعظم شهر را که در اطراف ارگ شهر بود اشغال کنند. کرزوس به معبد ارگ که وقف آپولون بود پناه برد با این امید که باز هم معجزه‌ای شود و بتواند تا بهار در آنجا بماند حالانکه که هنوز اواسط پاییز بود. شاه مرمناد به رقم قهرمانی های همراهانش سرانجام ناچار به تسلیم شد و درخواست کرد که او را نزد کوروش فاتح ببرند. برای نخستین بار در تاریخ یکی از فرزندان حقامنش شهر بزرگی را که اهمیت بین المللی داشت و مادر شهر جهانی بود که او از آن خبر نداشت اشغال کرد. بدین ترتیب کرزوس نمرد سارد مانند آمفی عظیمی بود که در میان کوه واقع شده است. کوه تومولوس پرده مدوری تشکیل داده بود که شهر را دربر می گرفت. بناهای اداری، دژها، آکروپول یا ارگ شهر، کاخ، خزانه سلطنتی در قلب شهر با کوه جدا و آبروها و مسیلها. کوروش و ایرانیان پس از گذشتن از محلات پرجمعیت هومه در پای آکروپول شهر، بازرگانان را کشف کردند با مغازه ها، هممام ها, ها و کمی دورتر کاخ کرزوز که از آجر ساخته شده بود. این بخش از شهر مانند همه بازارهای شرقی بسیار پر ازدهام بود. جمعیت در آن میلولید و فعالیت فوقلادهی بر آن حاکم بود. تمام کالاهای شرقی در آنجا با سکه های تلا و نقره مبادله می شدند. محله عطر فروشان توجه پارس‌ها را که به زندگی پرتجمل عادت نداشتند جلب کرد. بوی زعفران فضا را انباشته بود. در سارد، کروش متقاعد شد که هر کسی از جواهرات و تجمل خوشش میآید. طرفداران جهان هلنی فراوان بودند و هیچ شکی نبود که آنها هواداران تمدن یونانی هستند. لیدیایی ها به بازی ها، تاس بازی و قاببازی و تمام خوشی ها نیز علاقه داشتند سارد شهر تزادها بود گرایی در کنار پرستش بسیار محترمانه خدایان یونانی و جستجوی زیبایی یا تعلیمات فلسفی سلون و تالس و هواداران و مریدان ایشان به زندگی خود ادامه میداد. پس در سارد بود که کورش بر رقیب خود پیروز شد رقیبی که امروز مغلوب شده بود مردی بود که کشورش را به یک قدرت اقتصادی بی همتا تبدیل کرده بود و اینک باید در برابر پادشاهی که از های آنشان آمده بود کمر خم می‌کرد. رزوس درباره سرنوشتی که در انتظارش بود چندان توهمی نداشت و می‌دانست که چه بر سرش خواهد آمد. او جامعی فاخر پوشیده بود و به سوی فاتح خود حرکت می‌کرد. در همان حال لیدیایی‌های مغلوب بنا رسم آبا و اجدادی خود شروع به کمک به سربازان کینهجوی کورش برای جمع کردن هیزم و انباشتن آنها بر روی هم کرده بودند بنا سنت لیدیایی مرمناد مغلوب باید در شعله‌های آتش میسوخت شاه مغلوب با حالت تسلیم در حالی که اسای شاهی را در دست داشت و تاجی از بهترین طلای پاکتول بر سر گذاشته بود بر تختی که میان کوه هیزم قرار داشت نشست. گروش، در برابر چنین شاهی که بدون ادای کمترین سخنی سرنوشت شوم خود را پذیرفته بود، متأثر به نظر میرسید. چگونه میتوانست مانع مرگ شاهی شود که میخواست به رسم نیاکان خود بمیرد؟ چگونه میتوانست مرگی را که حق خود میدانست تا از تحقیر رهایی یابد از او دریق کند؟ کوروش خاموش، به تدارک که این خودکشی شاهانه در مقابل انبوه جمعیت غالب و مغلوب مینگریست. سربازان ناگهان بدون دریافت دستور هیزمها را آتش زدند. زنان لیدیایی نومیدانه از دیدن مرگ شاه بلند همت خود جامهها را برتن دریدند. ناگهان کوروش که به این نتیجه رسیده بود که همین اندازه درس عبرت برای کرزوز کافی است و نمایش زیاده از حد طول کشیده است، فرمان داد آتش را خاموش کنند و شاه لیدی را از مرگ برهانند. مردمی که با حالت تسلیم و تمکین به مرگ شاه خود مینگریستند ناگهان امیدوار شدند و مردان کوروش را تشویق کردند تا آتش را خاموش کنند. اما آنها به رقم تلاش زیاد نتوانستند بر شعله‌های آتش غلبه کنند گویی از این پس هیچ چیز نمیتوانست مانع پیوستن شاه کرزوس به اجداد خود بشود با این حال او با مشاهده اینکه دشمنانش میخواهند نجاتش دهند امید خود را باز یافت آنگاه سه بار نام سلون استاد خود و آپولون خدایی که آنقدر در عظمت او سهم داشت با فریاد ادا کرد ناگهان آسمان پوشیده از ابر شد و سپس باران شدیدی گرفت که به سربازان در خاموش کردن آتش کمک کرد تا بالاخره آب بر آتش فایق آمد بدینسان کرزوس نمرد اما سلسله مرمنات ها پایان یافت و نفرینی که به اعقاب گوکس شده بود تحقق یافت مگر حاطف دلفی وقتی برای اولین بار یک بربر با او مشورت کرده بود اعلام نکرده بود که انتقام هراکلیت ها از چهارمین نسل گوکس گرفته خواهد شد از آن رو که اولین مرمناد شاه خود کاندول سادلوه را به قتل رسانده بود سالها بعد هرودوت گزارش داد که همین حاطف وقتی لیدیایی ها درباره سرنوشت کرزوس نگونبخت از او پرسش کردند پاسخ داد گریز از سرنوشت حتی برای خدایان ناممکن است. کرزوس تقاس جد چهارم خود را پس می که از بدندیشی و بدسگالی زنی پیروی کرده و سرور خود را به قتل رسانده و در حالی که هیچ حقی نداشته جانشین او شده است. اینکه سارد با نیروی یک بربرش خال شود برای هیچ کس باور کردنی نبود. هنگامی که حادث تایید شد بیش از همه یونانیان شاید شرمگین از پیشگویی حاطف خود و احساس مسئولیت در برابر سقوط شاه لیدی اندوه خود را نشان دادند. بعدها پیندار شاعر گفت که خدمات و نبوغ کسی مانند کرزوس فراتر از آن است که فراموش شود. اما برای یونانیان یونیه یعنی کسانی که با لیدیایی ها به سازش موقت رسیده بودند مسئله دیگری مطرح بود، از این پس آنها ناچار بودند تحت اقتدار مردی زندگی کنند که به پندار ایشان به علت بی تجربگی در مورد جهان یونانی جز آزار و ناراحتی برای آنها ارمغانی نداشت.